جن‌های خودخوا نوشته ریچارد درکینز ای از نقدها برای استفاده همه پیتر مدافار در مجله اسپکتاتور 15 ژانویه 1977 زیست شناسان غیر گروهی که تعداد رو به فوزونشان جامعه شناسانم وقتی با رفتار بظاهر ایسارگرانه یا به نوعی غیر خودخواهانه در حیوانات مواجه می شوند، تمایل دارند تکامل آن رفتار را به حساب منفعت آن گونه بگذارند. برای مثال افسانهی معروفی است که موش‌های قطبی ظاهرا آگاهتر از ما به چنین نیازی در دسته های هزارتایی با پریدن از روی صخره به داخل دریا جمعیت خود را تنظیم می کنند بی حتی بیخیالترین خیال از خود پرسیده است چگونه چنین کاری در مجموعه رفتارهای این گونه جا گرفته در حالی که ساختار آن ژنی که منجر به چنین عملی می شود باید همراه با دارنده اش در این نمایش بزرگ جمعیت شناختی به دیار عدم ره سپار شده باشد. رد این داستان عنوان یک افسانه قابل انکار نیست. اما کارهای خودخواهانی ژنتیکی ممکن است گاهی شکل اعمال ایثارگرانی یا بیطرفانه را به خود بگیرد. ممکن است آن عوامل ژنی که سهلگیری های مادر بزرگانه در مقابل بی تفاوتی های سنگ دلانه را سبب می شوند در تکامل فراگیر باشند. زیرا به این ترتیب مادر بزرگ مهربان خودخواهانه شانس بقا و انتشار آن بخش از ژن خود را که درون نوههایش است بیشتر می کند. ریچارد آکینز یکی از درخشانترین زیزشناسان نسل جدید نادرستی بعضی از تصورهای جا افتادی زیست شناسی اجتماعی درباره ایثارگری را با ملایمت و مهارت رو میکند. اما کتابش به هیچ وش کتابی برای افشاگری نیست. برعکس بندی ماهرانی جدید از مسائل زیست شناسی اجتماعی بر اساس نظریه ژنی جنی انتقاب طبیعی است. به علاوه مت نیست معتبر با نگارشی شادی و شیوا، آنچه ریچارد داکینز را به شناخت جانوران راقب کرد، دوست داشتنی بودن حیوانات بوده است. گرایشی که جلوه های آن در همه زیست شناسان خوبی که در این کتاب آمده اند میبینیم. جن خودخواه از نظر سب جدلی نیست. ولی بخشی از برنامه داکینز برملا کردن ادعاهای بیبنیاد کتابهایی چون در باب خشونت لورنز قرارداد اجتماعی آردری و مهروکین ایبلسفلد بود اشکال این کتابها این است که مولفانشان کلا به راه اشتباه افتادهاند زیرا اصلا سازوکار تکامل رو متوجه نشده و این فرض غلط را پی گرفتند که مهمترین چیز در تکامل منفعت گونه یا گروه است نه مسلحت فرد یا ژن در بسیاری از پند و که به بچه محسل ها می دهند که تخم با مرغ یک تخم دیگر می سازد، در واقع تا حدی حقیقت وجود دارد ریچارد داکینز آن را چنین بیان می کند بحث ما این است که ما و همه حیوانات دیگر ماشین هایی هستیم که توسط جن های ساخته شده ایم من استدلال خواهم کرد که آن صفت قالبی که انتظار داریم در ژن باشد سنگدلی است. این خودخواهی ژن به طور عادی منجر به ظهور خودخواهی در رفتار فرد می شود اما همانطور که ملاحظه خواهیم کرد شرایط و موقعیت های خاصی وجود دارد که در آنها ژن با اعمال شکل قابل کنترل و محدودی از ایثارگری در سطح افراد به اهداف خودخواهانه دست مییابد واژه خاصی و محدودی که در جمله قبل آمدند بار ویژه ای دارند خلف آنچه ما دوست داریم باور داشته باشیم دوستی جهانی و سعادت گونه در کل مفهومیاند که در تکامل جایی ندارند داکینز میگوید شاید بتوان این حقایق را محکوم کرد ولی این کار از واقعی بودن آنها کم نمیکند هرچه درک بیشتری از فرایند خودخواهی جنها داشته باشیم به نحو شایسته شایستهتری میتوانیم محسنات مهربانی و همکاری و همه ی را که خیر جمع در آن است آموزش دهیم و داکینز اهمیت ویژه این کار را در تکامل فرهنگی یا غیر نوع بشر به روشنی و تفصیل بیان می کند داکینز در آخرین و مهمترین فصل کتابش به بندی یک اصل اساسی می پردازد که بیشک در مورد همه ی نظام های تکاملی کاربرد دارد حتی شاید در موجوداتی که در آنها اتم سیلیکون جانشین کربن است و موجوداتی چون انسان که بخش زیادی از تکاملش پرورده فرهنگ است و این اصل اصل ایجاد تکامل در هیئت‌های همتاساز از طریق برتری در تولید مثل است. این ها در موجودات عادی در شرایط معمول تفردهایی در ملکولهای دی این به نام جند برای داکینز، واحد انتقال فرهنگ چیزی است که او آن را میم مینامد و در فصل آخر، ما حاصل نظریه داروینی میمها را به تفصیل شرح می‌دهد. من به کتاب فوق‌العاده خوب داکینز پانوشتی اضافه می‌کنم. این فکر را که ویژگی همه چیزهای زنده داشتن نوعی حافظه است، اولبار بار فیزیولوژیست اتریشی والترنینگ در سال 1970 مطرح کرد. او از این واحد با عنوان میمم نام برد. واجه که ریشه لغوی مشخصی دارد توضیح ریچارد سیمون درباره این موضوع 1921 طبعاً تمام و کمال غیر داروینیست و نمیتوان آن را چیزی جز کار یک دوره به حساب آورد یکی از نظرهای هرنینگ را که یک فیلسوف طبیعتگرای رقیب پروفسور جی سی پیش کشید تا خنددار بودنش را نشان هست چنین بود باید تارگی وجود داشته باشد که دقیقاً همان خواصی را داشته باشد که ما حالا در دی اکسی ری با نئوکلیک اسید دی ای سراغ داریم. مجله اسپکتیتور 1977. نقد دوم نمایش طبیعی واب د همیلتون در مجله ساینس 13 مه 1977 خلاصه شده. این کتاب را همه میتوانند و باید بخوانند، زیرا جدیدی از نظریه تکامل ساده در آن توصیف شده است. با همان سبک ساده و روانی که اخیراً مطالب جدید و گاه نادرست زیست شناسی به مردم عرضه میشود. از نظر من دستاورد پرارزشی است. در این کار به‌ظاهر غیرممکن که موضوعات پیچیده ریاضیگونه مربوط به افکار جدید در تکامل و به زبان غیرفنی فنی شرح میدهد، بسیار موفق بوده است. حتی برای آن زیزشناسانی که با این مطلب آشنایی دارند وقتی در انتها با یک دید کلی بدان میگرند خالی از تازگی و شگفتی نیست. لاقل برای نگارنده که این سطور چنین بوده است. با این حال تکرار میکنم برای همه حتی بدون داشتن اطلاعات قبلی در این زمینه قابل استفاده است. خواندن کتاب جالبی در زمینه نزدیک به علایق پژوهشی خود هر کس را بدون قصد هیچ خودنمایی وامی دارد، که اشتباه ها را برشمارد این نکته گویا نیست آن موضوع مبهم است این نظر نادرست است و مدتی هاست که کنار گذاشته شده است این کتاب از نظر من متن شسته رفته است این نیست که در آن هیچ اشتباه احتمالی وجود ندارد چنین چیزی در کتابی که در آن حدس ها مطرح می شوند تقریبا غیر ممکن است اما در کل راه درست مسیر شناخت موجودات زنده را پیش گرفته و در موارد مشکوک راه را برای بحث باز گذاشته است. ارزیابی فروتنانه نویسنده از نظرهای خود، منتقت را خلع و سلاح می کند و خواننده هر از خود را با این پیشنهاد روبرو می‌بیند که اگر از مدل ارائه شده راضی نیست، خودش به مدل بهتری بیاندی شد. ارائه چنین پیشنهادی به ساحت جدی در کتابی که با استقبال مواجه شده، آشکارا خبر از تازگی مطالب می‌دهد. عجبان که چه بسا نظرهای ساده ای که تاکنون محک زده نشدهاند بتوانند خیلی زود گره بعضی از معماهای قدیمی تکامل را بگشایند ولی خوب این نمای جدید از تکامل کدام است تا حدی مانند یک تفسیر جدید از شکسپیر است چیزی که در متن بوده ولی بی گذشته گذشتند. اما باید اضافه کنم که این نمای جدید مورد نظر بیش از آنکه در نوشته درباره درباری تکامل داروین پنهان مانده باشد در خود طبیعت چنین بوده و فقدان توجه ما بیشتر مربوط به 20 سال نه سال ساله گذشته است. برای مثال داکینز از مولکولهای مارپیچی ناپایداری که برای ما آشنایند شروع می کنند. در حالی که داروین حتی از کروموزوم و رقص عجیبشم در فرایند جنسی چیزی نمی‌دانست اما حتی 20 سال هم آنقدر هست که حیرت بیافریند فصل اول کلاً پدیده مورد بحث کتاب را مشخص می‌کند و اهمیت فلسفی و عملی آن را در زندگی بشر نشان می‌دهد های نمونه‌های غیرمعمول و, غیر و ترسآور جانوران توجه ما را جلب می‌کند فست دوم در برای نخستین همتاساز در سوپ آغازین است میبینیم شمارشان زیاد و طرحشان پیچیده میشود شروع میکنند به رقابت بر سر محیط رشد میجنگند حتی یکدیگر دیگر متلاشی میکنند و میبلند و خود و آنچه که به چنگ آبرده اند و صلاحشان را در حصارهای تدافعی پنهان میکنند و از این حصارها نه فقط به عنوان پناکات در مقابل حمله رقبا و شکارگران استفاده میکنند که برای نجات از سختی فیزیکی محیط زیستی که توان قلب بر آن را یافتند چنین است که بسیج می شوند استقرار می یابند عجیب به خود می گیرند مانند سیل روان می شوند. روی ساحل در پهنه زمین در دل کبیرها و برف های دائمی در این محدوده که آن سویشان دیگر زندگی نمی تداوم داشته باشد آن سوب سرازیر می شود. بارها, با بارها و بارها و قالبهایی هرچه عجیبتر را میلیونها بار پر می کند و سرانجام به شکل مورچه، فیل، بابون و آدم در می آید. فصل دوم با اعتلاف چند زاده نهایی این همتاسازهای قدیمی به این نتیجه میرسد که پشتکار آنها علت نهایی وجود ماست این همتاسازها حالا به نام ژن پیش میروند و ما ماشین بقای آنها هستیم گرچه ممکن است از نظر خاننده پرزور و آزارنده باشد ولی آیا مگر چیز جدیدی است؟ خوب، تا اینجا شاید نه ولی البته سید تکامل با بدن ما پایان نگرفته است از آن مهمتر در یک دنیای شلوغ فنون بقا به صورت غیر ای زیرکانه می شود خیلی زیرکانه تر از آنکه زیست شناسان بتوانند آن را در چارچوب قدیمی و کهانه سازگاری برای صلاح گونه در نظر آورند کلن همین پیچیدگی هاست که موضوع اصلی بقیه کتاب را تشکیل می دهد. یک مسئله ساده آواز پرنده را در نظر بیاورید و به نظر می رسد تنظیم آن کارایی خاصی نداشته باشد. یک مادهگرای مبتدی که در پی یافتن آن راهی است که از طریق آن گونه ای از توکا، زمستانهای سخت کمبود قضا و دیگر مشکلات را پشت سر می گذارد ممکن است آواز پر نرهای خود را آنقدر نامحتمل بداند که رشه جذبه ای را در جلسه احزار روح با تعمال بیشتر ممکن است به این واقعیت برسد که آن گونه نرهایی دارد که اصلا همانقدر عجیب و دور از ذهنند و این در واقع یکی دیگر از موضوعهای اصلی کتاب است مثل مورد آواز پرنده نقش جنسیت در گذشته بسیار ساده و عادی توجیه شده است. اما درون هر گونه کل یک تیم از همتا سازها هم خود را صرف پای ریختن خطوط کلی این اجزا کردهاند. جایی داکینز از آواز عجیبتر نهنگ گوش پر صحبت می کند. آوازی که ممکن است آن آنسوی اقیانوس برسد. ولی ما در کمتر از توکا می دانیم که چیست؟ و به چه کسی باید برسد؟ تا اینجا از قرار شواهد شاید شعار اعلام همبستگی نهنگ ها در مقابل نوع بشر باشد که اگر چنین باشد خوش با حال نهنگ ها البته اکنون تیمی دیگر از تیم های همتا سازهایند که کنسرت سمفونی را تولید می کنند و این آوازها بیشک گاهی اقیانوس را در مینوردند، با منعکس شدن اجرام آسمانی که خود آنها بر اساس نقشه های پیچیدهتری ساخته و گردنده شده اند. اگر نظر داکینز درست باشد کاری که در ها با آینه می کنند در مقابل آنچه طبیعت فقط با ماده اولیه سوپ قلی شده انجام میدهد چیزی نیست. به این درد میخورد که نگاه جدید زیست در این کتاب و بعضی کتاب های دیگر مثل زیست اجتماعی اوویلسون را، مشخص می کند در رساندن پرتوبه این امید که شاید به زودی این دورترین پهنه های حیات را بتوان به شکل قابل فهمتری سر و سامان داد و اگر این امر در مورد همه جزئیات مقدور نباشد ناغل در مورد یک طرح کلی می تواند باشد که ساده ترین دیواری سلولی ساده ترین چند سلولی و آواز توکای سیاه را در برگیرد توی پرانتز افراد مذهبی و نومارکسیست اگر صلاح بدانند می توانند، این عبارت را برعکس کنند. تصوری که باید از آن بپریزی می است که این کتاب یک زیستشناسی اجتماعی برای خواننده معمولی یا مبتدی است. اولا نظرهای بنیادی زیادی در آن مطرح شده است و دوما عدم تعادلی که در کتاب قطور ویلسون با تأکید بر جمعه بازی نظری رفتار اجتماعی وجود دارد و, و آن نپرداخته را برطرف و آن را متعادل می کند. بازی نظری عبارت مناسبی نیست. مخصوصاً در بافت سطوح پایین‌تر تکامل اجتماعی. زیرا خود جنها روش کارشان را رو توجیه نمی کند. با وجود این معلوم شده است که در تمام سطوح بین ساختار مفهومی نظری بازی ها و تکامل فرهنگی تشابه مناسبی وجود دارد. دیگر گشنی که در اینجا به طور زمنی مطرح شد هنوز جدید و در حال پیشرفت است. مثلا من این اواخر دانستم که نظریه بازی ها نام دیگری تعادل نش برای مفهومی که کم و بیش معادل از نظر تعاملی پایدار بوده به کار می است. داکینز به درستی نظر پایدار بودن از نظر تکاملی را در این بازنگری جدید از زیستشناسی اجتماعی به عنوان مهمترین چیز منظور می کند. در هر وضعیت اجتماعی، عناصر بازی گونه در رفتار اجتماعی و سازگاری اجتماعی ناشی از وابستگی موفقیت راهبرد یک فرد به راهبرد دیگر افرادی است که با او رابطه متقابل دارند. پیگیری سازگاری که بیشترین بهره را از یک موقعیت خاص بدون در نظر گرفتن خیر کلی به دست می, آورد، می تواند به نتایج آوری منجر شود. مثلا چه کسی چنین تصوری داشت که در ماهی ها برخلاف اکثر جانوران دیگر این نر است که از تخم و نوزاد مراقبت می‌کند و اگر قرار باشد هر یک از دو جنس این کار را به عهده گیرد آنگاه جزئیات ظریفی مثل اینکه کدام زودتر زامه خود را در آب رها کنند تعیین کننده است اما داکینز و یک همکارش با پرداختن به یک نظر RL Trivers، در مورد اینکه جزئیات زمان زمانبندی حتی در حد ثانیه میتواند در مورد کل پدید تعیین کننده باشد موضوع را منطقی کرده اند و همچنین آیا انتظار نداشتیم در پرندی تک همسر ماده با کمک یک نر تعداد بیشتری تخم بگذارد نسبت به ماده گونه های چند همسر در عمل آن درست هزاد در درآمد داکینز در فصل تقریباً حشتاردهندی نبرد جنس ها یک بار دیگر مفهوم مقاومت در مقابل بهرهبرداری، برداری این بار برداری نرها را به کار می گیرد و ناگهان این ارتباط عجیب را طبیعی جلوه می دهد. این نظر او مانند دیگر نظرهایش اثبات نشده باقی می ماند و همچنین ممکن است دلایل وزینتری وجود داشته باشد اما آنها را که او به دست می و از دیدگاه جدیدش ساده به نظر می رسد، نیاز به توجه دارد در یک کتاب آموزشی مربوط به نظریه بازی ها شما بازی را نمی بینید هرچه از دایره است و مسله است که در کتاب های جدید هندسه به کار میروند. در یک نگاه همش جبر است. نظریه بازی ها از ابتدا یک موضوع فنی است بنابراین این ارائه آن به آن صورتی که بدون استفاده از فرمول در این کتاب آمده یک شاهکار کلامی است. این از نظر احساس بیرونی و کیفیات شرایط بازی نظری است. حال بگذریم از جزئیات درونی آن آر ای فیشر در مقدمه کتاب ارزشمندش درباره تکامل نوشته است همی هم برای ساده فهم کردن کتاب بینتیجه ماند در آن کتاب خواننده خیلی زود زیر فرمول فرمولها و جمله‌های پر محتوای فشرده خرد و خمیر می‌شود. حالا بعد از خواندن ژن خودخواه فکر می کنم فیشر می توانست بهتر از آن بنویسد گرچه آن وقت در واقع کتاب دیگری میشد اکنون به نظر میرسد میتوان نظرهای آموزشی ژنتیک جمعیت کلاسیک را خیلی جالبتر از آن طور که همیشه بوده و به سبک عادی دارو ورد. در واقع هولدین در این کار تا حدی بهتر از فیشر عمل کرده است اما کارش کم محتباتر از اوست. ولی چیزی که واقعا باید ذکر شود این است که در یک رویکرد جدید و اجتماعی تر به واقعیت‌های حیات تا چه حد میتوان از آن ریاضیات واقعا آورد در دروس ژنتیک جمعیت که پیش کسفتش رایت و فیشرن کم کرد از دیدن اینکه داکینز همانند من فیشر را بزرگترین زیستشناس قرن بیستم قلمداد میکند تعجب کردم اما از اینکه چقدر کم کتاب فیشر را تکرار کرده است نیست تعجب کردم سرانجام در فصل آخر داکینز به موضوع جالب تکامل فرهنگی میرسد او اصطلاح میم صورت کوتاه شده میمم را به عنوان معادل فرهنگی ژن راه میاندازد گرچه تعیین حد و مرز مفهومی این واژه مشکل است مسلما سختتر از, از تعیین حدود ژن که آن خود به اندازه کافی مشکل بود احساس می کنم به زیدی در میان همه زیستشناسان رایست شود و همینطور نزد فیلسوفان، زبانشناسان و افراد دیگر آنطور که جن در گفتار روزمره جا افتاده است. اختباس با اجازه از ویده همیلتون مجله ساینس 1977 جن و مم یا میم جان مینارد سمی در نقض کتاب لندن The London Review of Books فبری 1982 اقتباس از نقد رخ گسترش یافته جن خودخواه از این نظر برجسته است که با وجود برخورداری از نگارشی مناسب همگان در شناسی مطالبی برای گفتن دارد علاوه خود این مطالب به نوعی خاص برخلاف کتاب کلاسیک دیوید لاک زندگی سینسور که نوشتهی برای همگان است. در ژن خودخواه مطلب جدیدی گزارش نمی شود و شامل مدل ریاضی جدیدی نیست. در واقع اصلا هیچ مدل ریاضی در آن نیست. تنها چیزی که به دست می دهد یک دیدگاه جدید نسبت به جهان است. گرچه این کتاب را بسیاری خوانده و لذت بردند اما دشمنیهای های زیادی را نیز برانگیخته است. از نظر من بیشتر دشمنیها ها ناشی از تفاهم یا بهتر بگویم سواتفاهم هاست. و عمدهترین آنها عدم درک موضوع کتاب است این کتاب درباره فرایند تکامل است نه کتابی درباره اخلاق سیاست یا علوم انسانی اگر موضوع تکامل برایتون جالب نیست و نمیدانید چرا بعضیها اینقدر خود را درگیر چیزی غیر از روابط انسانی می کند آن را نخوانید چون بیدلیل ناراحت شوید اما با این فرض که به تکامل من دید خواندن این کتاب متوجه میشوید در درگیری های بین زیستشناسر تکاملی در سال 1960 تا 1970 داکینز کجای کار بود بحث آنها به دو موضوع وابسته به هم انتخاب گروه و انتخاب خیشاوند مربوط میشد ون ادوارس با متراکتن اینکه تکامل سازگاری های رفتاری از طریق انتخاب گروه یعنی از طریق بقای بعضی گروه ها و نابودی بعضی دیگر صورت میگیرد بحث انتخاب گروه را براه انداخت. تقریبا در همان زمان، همیلتون پرسش دیگری را در مورد عملکرد انتخاب طبیعی مطرح کرد. او گفت اگر ژنی سبب شود دارنده زندگی خود را برای نجات چند تن از بستگانش فدا کند، ممکن است بعد از آن نسخه دیگری از آن جن وجود داشته باشد. در مقابل، وقتی که چنین فداکاری صورت نگرفته باشد، همیلتون برای ساختن یک مدل کمی از این فرایند مفهوم شایستگی فراگیر را مطرح کرد که نه فقط فرزندان خود فرد بلکه هر فامیل زاده ای را شامل می شود که با کمک آن فرد بزرگ شده باشد و متناسب است با درجه بندی میزان نسبت خیشابندی. داکینز ضمن قدردانی از همیلتون به خاطر حقیقی به گردن ما دارد یادور می شود که او در آخرین تلاشش برای به کرسی نشاندن مفهوم شایستگی به اشتباه رفته است معقولتر این بود که از چشم خون گرفته ژن به تکامل می‌نگریست. نگریست تا که این کرد تفاوت عمده بین همتاساز چیزی که ساختارش دقیقا در فرایند تولید مرس تکرار می شود و محمل چیزی را که میراست و همتاسازی نمی کند. ولی ویژگی‌هایش تحت تأثیر همتاسازهاست تشخیص دهیم. مهمترین همتاسازان آشنای ما، اسید نوکلئیک ملکولای دی اینه که جنها و کروموزوم از آنها ساخته می شون. بدن سگ، مگس میوه، آدم، محمل های سپس ما چشم را میبینیم که ظاهراً برای دیدن سازگاری یافته است و ممکن است این سوال معقول برای من پیش آید که به نفع چه کسی پیدا شده است از نظر داکینز تنها پاسخ معقول این است که چشم به نفع همتاسازانی که مسبب پیدایشش هستند تکامل یافته است گرچه نیز مانند من برای توضیح انتخاب فرد را به انتخاب گروه کاملا ترجیح میدهد ولی همواره به برتری همتا ساها میاندی شد، جان مینارد اسمیت 1982 نقد چهارم چاپ به نخست ژن خودخاطر 1976 موضی از هیجان در میان زیست و عموم برانگیخت، نگاه شفافش از دیدگاه ژن حیات در نصری روشن و رسا، خطوط فکری درباره چیستی انتخاب طبیعی را چنان در یک چارچوب مفهومی قرار داد که به منبع باارزشی برای درک جنبه مختلف تکامل تبدیل شد. مهر تعیید زمان را آن می تواندید. ژن خودخواه را به خاطر قوت مطالب علمی و زبان غیر فنیش اغلب شاهکار نگارش علمی دانستند. مطالب آن امروز هم جمچن زمان انتشارش تازه و معتبر است این کتاب را همه می توانند و باید بخوانند نمای جدیدی از نظریه تکامل استادانه در آن توصیف شده است و د هاملتون مجله ساینس سر پیتر مداوار در مجله اسپکتاتور در مورد ژن خودخواه گفته مد معتبر با نگارشی شادی بخش شیوا او خوب